أعوذه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد <تصفيق> وَلَا أَحْلِ <سؤال> بَيْتِهِ تَيِّبِينَ وَطَاهِرِينَ وَلَهُدَاتِ الْمَهْدِيِّينَ <سؤال> وَالْمُنْتَجَبِينَ سِيَّمَا الله اللَّهِ فِي السَّمَادَاتِ وَلَرَزِيمِ بالله من الشیطان الرجیم الٰوظت امعنتم في البقی و في الأرز مصارحتا لله بالمناسبه و مبارزتاً للمؤمنین بالمحاربه توفیق ایسم حمدالله محضر و مارک برادران و خاران بزرگوار در این ایام و مناسبتی که به نام نامی سیدت و نصاد آدمین صدیقی طاهره گرد آمده ایم گفتگوی ما در کلمات نورانی، امیرالمؤمنین المؤمنین در نحجن بلاقه و کلام در خطبه قاسعی امام است طولانی ترین خطبه نحجن بلاقه و خطبه که مهبریت اون رو گفتیم شناخت شیطان، حالات ابلیس، یاران ابلیس و ارتباط انسان، آفتهایی که آدمی رو از این طریق فرو می برد و فرو می گیرد بود که الان در بخش دیگری از این خطبه سخند می گویی خاطران بارک هست که در قسمت پیشین امام یک مثال هم متنه کردن بعد از تمام مطالبی که گفته شده بود اشاره فرمودن نباشید مانند آن کسی که مانند اون بره بر فرزند مادر خیش ملاحظه فرمودید که امام ماجرای دو برادر همانون که قرآن بازگو می که که پیامبر بر بریشان نبع و خبر دو فرزند را همان را بازگو فرمودند و اشاره کردند که علتی که این برادر به چنین دامی فرو رفت چیزی نبود جز آن که ما الحقته العظم و بنفسه من عداوه الحسد اون کبری که در درون او جوشید حسد به دنبال اون آمد نائره قذب شعله قذب افروخته شد و کار به آنجا کشید که فقط لهو دست به خون برادر هم آلوده کرد کار به آنجا کشید که پشیمان شد اما و او آثام القاتلین الا یوم القیامه اما دیگه تا خود قیامت او باقی ماند اثم و گناه اونها که به این شیوه عمل کردند و تأسیس اساس رو از این متکبر دیدند از این قسمت از کلام و خطاب امیر المؤمنین وجود اونبار گذرت اشاره می کنند به نکته بسیار مهمی در ادامه همه اون مطالبی که در این پنج نوبت گذشته با هم بررسی کردیم. از اینجا امام به نوعی می توان گفت که اشارت میفرمایند به انعکاس آثار ابلیس و شیطان در جامعه انسانی و به بیان دیگر به اونها که مبتلای به دا درد شیطان شده اند میفرمایند می فرمایند. و به بیان ما شیطان صفتان را به میکشند می کشند. و هشدار به این جماعت می دهند و ما را می آگاهانند از این خطر و آسیبی که پیش روی ماست من عبارت حضرت رو بازگو کنم و یک بهش با هم انشاء الله بررسی میکنیم. الله بگردد امانت هم فلبقیه. من همین جا کنم قبل از بروید به کلام که لحن و سخن امام ناچارم این جمله رو بازگو کنم. در منطق یک قضايا رو میگن میگن این قضايا قضاياي حبيبی است. گاهی یه قضاي رو میگن قضیه واقعی است. یعنی گاه صحبت این است که فلان خانه مثلا کل دار فی البلده تمام خانه هایی که در شهر بود ویران شد این یک قضیه واقعیه یعنی در این زلزلیش آمد در این آسیب که پیش آمد منازل و هایی که در این شهر بود ویران شد نه اینکه تمام خانه هایی که در تمام شهرها بود از بین رفت این نوع قضیه رو در منطق میگن قضایه واقعیه اما یه غذایایی داریم غذایای حبیبی غذایای حقیقی بیان زمان موقعیت شرایط ندارد بیان این نیست که هر خانه که در این شهر بود ویران شد این که شما بین هر خانه که سوست ساخت شود ویران می شود و ان اوحل لبوت لبیتول انکب مثلا این قضیه قضیه مستاانی نیست قضیه ی حقیقی است یعنی در همه جا و در همه زمان ها سادق و جاریز. اون چند نیرون مؤمین در اینجا میفهمند خطاب اولی ممکنه یه مخاطبی رو دارن یعنی یه جمعاتی رو ابتداعا مطرح می کنند اما شکل قضیه قضیه ی حقیقی است، نه قضیه واقعیه یعنی تمام مثار و قرون رو در می نوردد. تمام مخاطبان خودش و را و المؤمنین تا انقراض این زمین و زمان مورد خطاب قرار می‌دهد و شامل میشه سخن‌های ما فرمود الا وقد ام انتم سنباقی <تصفح> این دیگه حال روز کسانی است که به تعبیر امامون مراحل قبلی رو طی کردند سید ابلیس شدند فرمود آگاه باشید که شما امعان در بغی کردید کلمه امعان به معنای قار به معنای فرو رفتن به شدت گاهی این کلمه رو شنیدید میگیم که باید در این مسئله امعان نظر شود یعنی بود نگاه رو خیلی عمیق به این مسئله بیفت کنید الا و فلعظ کسی که به شدت این سو و اونسو میزند در کلام عرب میگویند الا وقت امعنتم فل بهم بدانید که شما در بهمی و در ستم و زیاده خواهی اممان کردید فرو رفتید شیطان کاری میکند کند که انسان ها سیری پذیر میشوند و جه ها و از انفسهم ها انفاس با خدمت دوستان اشاره کردیم دیروز که این کبر از دل اون حسد می جوشد و از ترکیب و لقاه شوم که بر و فرزند نامشروع تمع و حرص متولد میشه در وجود انسان و این سه میشن سه زل مسلس حلاکت نابودی و ویرانی هر انسان که بر حسد تمع و حرص اگر کسی مبتلایی بشه این بشود به تردیدی نفرمایید ظالم است یعنی هیچ حقی به حدی را برای کسی قاهد نمیشه نه مرز خود میداند نه مرز دیگران میداند میره تو به میره تو تجاوز و تعدی فرمود الا وقت ام انتم فی شما فرو رفتید به شدت در بحقی وستم هم و افسدتم فی الارز هم تکرار میکنم که امام حال روز کسانی را میگوید که به درد ابلیس گرفتار شدند و افسدتم فل از و شما فساد و تباهی در زمین ایجاد کردید خب صلاح و فساد نقطه مقابل هم خداوند عالم را بر اساس صلاح قرار داده است عزیزان نظام طبیعی عالم نظام صالحانه است نظام تشریح بر اساس سلاحیت هست یعنی اراده و فعل الهی بر سلاح هست حرکت مخالفه اراده و فعل خداوند در تکوین و تشریح نامون فساد هست افتیه کسی مخالف حکمت الهی و سن الهی حرکت می کند به فساد می ره اصلاحها. خدا اصلاحش کرده شما افسادش نکنید اگر مؤمنید این کار رو نباید انجام بدید زالکم خیرون لکم انکنتم مؤمنین یعنی شرط ایمان صلاحیت هست اصلاح هست نه افساد فساد با ایمان افساد با ایمان هرگز سر سازگاری ندارد فرمود شما افساد دون ارز به فساد در زمین میل کردید مسارهتم لله بالمناسبه چقدر زریف میفهمات حضرت مساره از ماده همون سراحت و تصریح میگید من آدم سریح و لحجه ای هستم مساره خیلی رو واضح آشکار مسارهتن لله بالمناسبه مناسبه از ماده نصب با ساد به معنای عدابت به دشمنی شما آشکارا با خدا به ستیزه و مقابله برخواسته اید با این صفات به ویژگی هایی که در وجودتون در آمده است و مبارزتن مؤمنین بالمحاربه و به استیزم و ستیزم و جنگ با مؤمنین و بندگان خدا برخواسته اید اگر کسی مبتلا می به درد شیطان شد عدوولاه می شود و عدوولاه ناس می شود امیر الماملین در قسمت قبلی پیشین و اون قسمت های نخستین خطبه که خاندین ابلیس رو چه معرفی کرد فرمود فرین این عدوولاه مراقب باشید که این عدوولاه شما را به عداوت با خدا مبتلا نکند با اون کسی که سر سازگاری با حق ندارد سر سازگاری با بندگان خدا هم عزیزان ندارد. اینه که همیشه دیده اید و ده ها بار سد ها بار خدمت عزیزان خواندیم و گفتیم مجموعه می که این کتاب مستتاب الهی ما را بدان میخواند. ارتباط شایسته و بایسته با خالق و حضرت هم و ارتباط شایسته با خلق و بندگان اونست. کل تعالیم این کتاب این دو کلم است. ارتباط درست و شایسته با خالق وجود با خلق و او. اون کسی که رشته اتصال خود رو با خدا می و قطع می کند تردیدی نفر به بندگان او هم رحم نمی کند با خلق همسر سر ستیزه دارد یقیناً اداوت عدا، و دشمنی با بندگان خدا هم خواهد کرد فرمود و مبارزت مبارزتا للمؤمنین بالمحاربه فلاح. الله في كبر و فخر الجاهليه اون آره ریشه ها رو داره امامیه که چرا به این فساد چرا به این دعوی مبتلا میشن انسان ها فرمود فلاح الله با این لفظ سخن امام آشنا هستی در نهج البلاغه حداقل اون خاطری غم انگیز غروب خونین بیستم رمضان تو ذهنتون میاد که امام برون اون کلمات خود چه زیبا گفت الله الله في بیت ربكم الله الله في القرآن الله الله في الله الله في الايتام در اون وصایای زیبای اویر خودش وجود اون که امیر ملک ولایت چگونه مردم رو به خدا سوگند شبنورد به تعبیر ما، هشدارشون به کلمه الله و ذات باری تا. شما را به خدا، شما را به خدا به قرآن، شما را به خدا، شما را به خدا به بیت و خانه خدا، شما را به خدا در حق جیران و همسایگانتون و هیتام توصیه می‌کنم شما را. اینجا هم امام دیگه کلمه جلانه رو به کار می‌برد دیگه. الله شما را به خدا. یعنی جانبه الله را قبلنا خدا رو را رعایت را کنید. خدا رو را رعایت را کنید در این مسائل. الله فی کبر لحمیه در اون کبری که از این حمیت ها در وجودتون میآید که به این فساد ها شما را میکشند. ای سلیماب ز سرچشمه بگیر ای سلیماب ز سرچشمه بجو که چو پر شد نتوان بستن جوی برید از مقدمات شروع کنید جلوگیری کنید نظرید این فساد و تباهی بکشید فی کبر لحمیل. همیره همینیت رو بارها مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز خود واژه رو گفتیم چون اون روز نخستین گفتم اشاره میکنم هم میه هر کجا به کار برده میشه یعنی داغی شدت همه چشمه آب گرم معدنی همین اون دوستی شدید داغ بی محابا. یا حتی اون مایع گداخته جهنم خود این واژه چنین شدتی رو میرساند اون عصبیت و تعصبی که به شدت انسان هیچ حد و حسری ندارد وابسته به یه چیزی نیشود بدون منطق بدون هیچ اصالت و حقیقتی نام این همون حمیت عصبیت، حمیت جاهلیت برخواسته از جه فرمود نکند که این کبرالحمیه شما را بگیرد بپرزید از این تأثیلاتی که از درون اون کبر را برمی آید افتخار به نجات افتخار به دودمان، افتخار به تبار، مشهی این چینن، اسفهی ها اونچهناند، ایرانی ها این گونه هستند، عرب ها اون گونه هستند، است، پان ترکی است، مسیونالیسم از دل این همه این مسائل درآمد در طول تاریخ و در میآید وسیزم. تمام این فخر فروشی ها و تمام اینها شبه ها نیز از آنچه وجود با را که امام از اون تغییربیر به کبر همهه می کنند. دیگه اقعاد خرد و کوچکش برمی گردد به خود انسان ها. دیگه کبر به مسامل دوره بر خرد کوچکمون. فرمود کبر الهمیه. دیگه بفرموید حتی به ظاهر و تیپ و شکل و قیافه هم بکشد. به همه چی می کشد این. فرمویشه ما. کبر الهمیه و فخر الجاهلیه بپریزید از این تفخورات فخر ها و تفاخوری که ریشه در جهر داره. و تفاخرون این تفاخری که اعلم و انبال حیات و دنیا قرآن حشنا رو اون رو میده است که از این لعب و لعب به زینت و تفاخر کشیده میشوید این دام هاییست که شیطان فهم میکند از این فخر فروشی های بیمورد چه چیزی رو عزیزان ما برمیگرده به همون بحث دیروزیمون چه چیزی رو ما منشق و مبدع فخرمون میتونیم بدیم قرار بدیم زالت اون از هستی برج که ای توانت که هستی برش اگر زر است اگر زوغ است اگر جمال است ما مالک چی هستیم در حقیقت در این دنیا به شکل واقعی که منشأ فخر ما باشه با چی ما داریم که بون فخر کنیم انسانی که فوق است چگونه خود رو واجد جا میزند ما که خودمون چیزی نداریم این وجود؟ ما که میهمانان این خاک دانیم آمدیم و میرویم چند سواهیدین کره خاک ما نه مالک زریم نه مالک زوریم قل اللهم مالک الملک تو الملک من تشاء و تنزع الملک من من و تعز من تشاء و تذل من تشاء و, و بیدک الخیر انک غفور کل شاین قدیر ما که مالکیتی نداریم و چی میخوایم فخر کنیم به مال گذرای آرز ارزی. اصلا به مان در کلام را به آرز میگن این چیزی که چی میشه؟ می آید و می رون. به عبر آسمان آرز میگن چون می آید و می رون. ما چیزی نداریم در حقیقت که بخوایم بهش فخر کنیم از خودمون چیزی نداریم که به فخر کنیم فرمود فخر الجاهلی ریشه ای این فخر از جهل از ندانستن و آگاه نبودن که انسان میخواد فخر کنه باون با به امور ناپایی گذرا و فخر الجاهلیه و مُلَاقِ و, و مناف خُشْشَيْتَانِ عقیقتم نعرضیم کنم عزیزان اگر به این مطالب امام اون بعد جامع شناختی سخن رو ببخشیم و از این زاوی هم استفاده کنیم به دریافت هایی میرسیم در تحولات اجتماعی جمعی لکات ترجیبی از این در میاد فرمود نهو بدونید این کبر عصبیت این فخر جاهلیت ملاق و و مناف و شیطان این ملاقه شنعان از شنعان ملاقه میتواند جمع ملقه یا ملقه باشد که شاید دومی بهتر باشه یعنی میتونه معنای مستری داشته باشه یا معنای اسم فائدی از ماده لقه ملاقه و شنان لقاه یعنی تولید یعنی نمیگه این تولید مثل لقاه ورسلن ریاه لواقه این بادها میان لقف میکنن تولید میکنن ازش زهر برخواست برخاست 70 توخم میشه در زمین چه این اتفاقی می میافتاد فرمود این که ها و این فخرها تولید کننده چیست ایجاد کننده یه آن بغض ها کینه می جوشد از دل این افتخارات این فخر کردن به این به اون یه جبهه ای رو مقابل شما قرار میدت فخر به این خاندان و این خانواده و مقابل اونها این چنین می شود که کم اممت لکایو جرین رو به حالته یکی از موضوعات اصلی که میتونم بگم خدمت دوستان عزیز بیش از پنجاه در درصد فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام رو تشکیل میداد دوستان عزیز آشنای با ادب جاهلی هستند اشعار بنی تمیم رو نگاه کنید نمیدانم مغلعات صبر رو نگاه کنید امر بن رو نگاه کنید نمیدانم امر القیس رو تمام این چه جرودارانه تمام نتایج ارز به خدمتون ادب و فکر و فرهنگ جاهلی بودن پنجاه درصد اینها بیشش مفاخره گم عمت لکه یا جریر و خالت عمه تو کی خاله ای تو کی بابای ما کی ننه ما کجا دایی ما کجا قبیلنی تو چی سرزمین ما کجا آب ما خاک ما همین بودنست از دل این چی در می است. حالا ببینید چه شکل اینها ها مدرن می عزیزان شکلی این ها در اصل زمان ما از اون رنگ و بوی جاهدیش تبدیل میشه به چی؟ به این عصر امروز ما همینایی که میبینید تو دنیا همینی که داره از این سو و صوب دنیا تو مغز و شریعت فرو میکنن با هزاران هزار رسانه تبلیغات و عشقان مختلف که از دل اون همون داره در میاد همون شیبه ها همون روش های مفاخرانه فرمود اونجا میکن. عرض به خدمتتون اصل مبنا رو فخر قرار دادن و از دل فخر چی در اومد بغض و کینه و ادامت و خونریزی و فساد و تباهی جنگ جنگ ریشه بسیاری از جنگ ها در روی زمین مگر چی بوده مگر این امپراتور محسن چی دید ریشه های اون از کجا بود ایستاد اون ملعون دیکتاتور اونچنانی عرض به خدمتتون زلین قرار داد 1975 تو که چی گفت بعدش الفخر عرب چی بود الفخر عرب رویش ها همینه دیگه شنهان و بغزه ها و کینه ها برون می آید فرمود بدانید که ملاق مُلَاقَهُ شَنْهَان خیلی کار بردی و ریز و کوچک عرض می کنم بیل زم شوهن به مجرد این که این آقا به خانومش میگه گه بابا برو نمی عرض به خدمتون با این برادرت همین ساده همین حرف جود با همین برادرت با همین ایلو تبارت با همین خواهرت نمیدونم با این شوهر خواهرت حالا این بعضیان هم با این شوهر خواهرت مثلا تمام دیگه یعنی unconsciousness ناخاسته رفت تو زمیر پنهان این زن که این تیر رو تو چله کمان بگذارد به جا که برسد محکم به کوه به سینه این مادر این خوهر این برادر این یعنی بغض و کینه رو کرد؟ بزرش رو کاشت و منتصر چین تولد فرزند نامشروعش، این بزند اون بزند میشه تنانزو یعنی این فخر ها این تحقیر های بر اساس فخر نتیجه یعنی میشود چینه ها بغض ها کانون خانواده رو هدف قرار دادن حتی خیلی امیغ بنیان رو فرمای فرمود این ملاق ملاقه و شنعان. و منافق و شیطان منافق، منفق، منفخ هر دو میتواند باز جنبه مستری داشته باشه جنبه اسمعالی و اسمعالت داشته باشه این عامل نفخ و دمیدن شیطان است دیروز اشاره کردیم آتش رو میدمن شعلش میکنم بدون این آتش کینه، آتش بغض تمام اینها رو شیطان با این ابزارها میدمه داره شعله برمیشه و شیطانو یوجبو بین کمول حداوتن و البغضان کار شیطان ایجاد بغض و حداوت در میان انسان هاست فرمود برحضر باشید از این عصبیت های بیمارد و تأثبه های بر برحضر باشید از این که که برخواسته از عصبیت است. اجتناب کنید از این فخر ها از این فخف روشی های که بنیاد رو به هم می ریزد و از دلوان چینه ها و از آتش های شیطانی برون می آمید. علتی خد عبهل امم الماضیه. این ها چیز هایی بود که امت های گذشته رو هم فرید داد. اینها رو هم دو ها رو مشکلات کرد. و قرون الخالیه یعنی ایمان می خواهد که این های سنت های است که جاری بوده و جاری هست. از همین راه ها گذشتگان زمین خوردن شما هم زمین میخورید اگر مراقب نباشید حتی ان نقو فی حنادس جهالت و مهاوی زلالته زلننا ان سیاق هی صلصن انقیون اجازه بدید من نتونم احساس خودم رو کنترل کنم و برای بار چندم بگم محترم بارکه دوستان شما اینو به اصطلاح تن حلومه در زمان شناسی میگیم ما یه آلب داریم یعنی یه استرارچل کنامه یه کانسپت و محتوی است. ما الان داریم محتوای ساخنه امام رو میگیم. اما واقعا باز میگویم و تکرار میکنم یک دهان خواهم به پهنای فلک. تا بگویم شرحان رشک ملک. من نمیدانم این امیر ملک کنام چگونه جمعنات و واجیگان و عبارات موم در دست اوست. می پیچاند، می چرخانند می تابد نو نو ترکیب و اصطلاح و واژه و لفظ بران می آید از درون کام و دهان دلنشین و زیبا و دلنواز و الهه خو او یعنی اگر ما شرح واژگانی این کلام رو بخویم خدمت شما به عنوان درس ادبیات عرب شروع کنیم این خطبه رو باید 20 سال شرحش بکنیم عزیزان زیبایی های لفظی این خطبه را اگر بخویم بگیم ما داریم الان به محتوی لفظ به محتوی میپردازیم بله. فرمود حتی اعنقو ببینید ترکیب کلمه اعنقو اعنقو از ماده چی میاد اونق گردن وقتی که یه چیزی پیش میاد یعنی یه جایی اتفاقی میادت مردم سری چکای میکنن سر و بالا میکنن گردن کشی میکنن این وقتی این کسی کار میکنه کسی آهسته سرشو بالا میگره یا نه وقتی میگم برید زود سرشو بلان میکند اعناق به معنای به سرعت بر چیزی اشراف پیدا کردن به سوی اون شتافتن با این ریشه لغوی فرمود حتی اعنبو گذشتگان به این فخر رو به این که گرفتار شدن تا شتافتن فی هنادس جهالته انودس جمع هندس باهی حتیس نهووز هندس باهی حسین هندس یعنی ظلمت و تاریکی در است فی انادس جهالت اینا شتافتن در ظلمت‌های جهل جهلی که از سوی شیطان است یعنی اینها با اون کبرو با اون فخفرشی رفتن تو ظلمت ها و تیرگی های جاهلانه فرو رفتن و محاوی زلالت، محاوی جمع محوات محوات یعنی پردگاه و اینها رفتن تو پردگاه های زلالت و گمراهی شیطان ظلالن انسیاغهی و سلسن فیقیادته این رو در اون من باز هم اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز قبلا هم مفصلتر هم اشاره شده ببینید شیطان ابلیس جوری عمل می کند با انسان همون مراحلی کرز کردن اون جایی که ما فهمدن حلقه میندازه خزام میندازه حلقه رو تو بینید می دور دهان این تیکاهن هایی که میذاشتن زاشتن گوشه دهانه این مرکب لجوج، تکان می میکشیدن مهار می شد احتناکش می لجامش میزدن لگامش میزدن یعنی به جایی میرسد ممکن ممکنه انسان توی جاهایی مقاومتی بکند یعنی یک کمکی سبب سنگین بکند اما وقتی میرود و میرود این خطوات جدیتر و قویتر میشه دیگه مقاومتی نداره انسان در قبال شیطان بلکه میگشد هر جا که خاطر میبرد هر جا که خاطرخواه اوست. امام فرمود این که بره این فخر این شنان و بغضی که می در وجود انسان ها وقتی به حج میرسه دیگه در قبال خواست و میلی ابلیس انسان ها هیچ مقاومتی هم نمی کنند هم از پیش می هم از پس میراند. دقیق بفرمایید. زلولن انسیابه سلسن فی بیاده وقتی که شما مرکبی را از جلو کشید و میبرید قیاده میکنید وقتی از پشت میرونید سیاقه میکنید سائق و قائد فرمود شیطان هم سائقشون میشه هم قائدشون میشه زلولن هم سیاقه و حال این که اینها وقتی شیطان سیاقشون میکنند و میکشه خیلی رام چازه میکنند اصلا مقامتی ندارن میکشد این هم میرن کاملا از پشت سیاقت از پشت حالشون میدن یه تکانشون میدن را میروفتن گفت من دارم میرم خلیم نده اینا را میروفتن میرم فی قیادته وقتی یه کلامی خیلی روانه خیلی راحت متوجه میشید پیچی دیگی ندارد میگیدین کلام چیه سلیسه سلسه به معنای روانی فی رو قیادت. وقتی اینها را قیادت میکند از جلو میبرد شیطان اینا کاملا سلیس هست روانه هیچ مقابتی ندارد یعنی کاملا تسلیم شده یند چون اینا پذیرفتن دیگه فکر شیطانی را گفتار شیطانی را خوی شیطانی را چون پذیرفتن تولی شیطان را دیگه اختیارشان را هم به ابلیس و شیطان دادند و میروند امران اینه ها برای امری که یعنی کانن امر و امرن امری که تشابهت القلوب فی متاسفان امری که چه بسیار دلها به مانند این گرفتار شده اند یعنی مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست یه دردی که خیلی ها درد مشترکشون از این درد و تتابهت القرون علی. چه نسل ها و روزگاران و انسان هایی این گونه به این شیوه فریفته شدند و رفتند و کبرند تزایقت صدور به و متاسفانه اینها اعتمدو الا کبرند به کبرند اینها به سوی کبری متوجه شدند که تزایقت صدور به خیلی جمله غمانگیزه دردناکه ببینید این صدر و جان اینو بگم خدمت دوستان فعاد قلب صدر تمام اون واجگانی که در قرآن در مورد جان و روح انسان وجود داره اوجش صدره بالاتر از همهش صدر یعنی وقتی حالات عاطفی و وجودی و شور و سوز و اینها رو خدا میخواد بگه فعاده وقتی میخواد فقه و فهم رو بگه قلبه لهم قلوبون لا یفقهونه به اما وقتی میخواد وسعت وجودی انسان به خداوند مطرح کنه هست چه کلمه استفاده میشه تو قرآن؟ از سعد نشرح لکه صدرت رب شرح لی صدری تا شرح الله صدره لیل اسلام یعنی اون بقد وجودی ما که وسعت میابد وسعت میابد ای همه دریا ای همه هستی چه میجویی آدم؟ ای همه دریا چه خواهی سرد نم یعنی وقتی بحث دریایی بودن وسعت روح انسان است از شرح استفاده میشه حالا این انسانی که میتونه شرح پیدا کنه میتونه شرح پیدا کنه به گونه باشد که تمام هستی اینو که میگن حکمه میگن سیرورت الانسان آولمن مزاهیان دل آولم رعینی یعنی وجود این روح و جان تک تک شما خانوم ها و آیان عزیزان وسعتی ای دارد احنا اوکتر از این جهان پیرامون این جان و روح ما حالا شیطان این که و خصوصیات شیطانی کاری که میکند که این صدر ما از صدر یه گنجش کم کوچکتر میشه، تنگ بینی خرد بینی کوته بینی همه اینها به دنبالش میاد محدودیت محدودیت گاهی میبینید بعضی از انسان ها واقعا انسان وقتی نزدیکشون میشه یه دریا دلند یه چیزی بندازید شما توی این خزر نمیدونم یه زلولهی رو بندازید حتی این دریا آنچان با امواج زیر رو میکنه مهوش میکنه از بین میبرد بعدم پردش میکنه به ساید میرزد اصلا کی ای شود دریاز پوز سک نجست که شود از پف منتمست کسی میتونه به این دریا از بگذره. بگذاره این صدر انسان دریا میتونه باشه عزیزان اما اگه این صدر اونقدر کردیم کوچیکش کردیم کوچیکش کردیم که یه تلنگور بزنیم افتاده است چقدر قمنگیز امام دل میسوزاند برای استعدادهای از دست رفته دلهای کوچک شده صدرهای زایه شده و کبرند تزایقت صدورو به بینها اینها متاسفانه کارشون به جای می کشند به کبری مبتلا میشن که صدرها رو زیغی می کند زیغی می کند زیغی می کند به وسیر شیطان اما امام راهکار می دهد وجود اون گذرت عرض کردم که پله پله فرمود اینها میشید با این شیله شیطان صفت میشید این حالات شیطانی میاد تو وجودتون حالا. فرمود الاف الهذر من طانت صاداتكم و کبرائكم الذین تکبرو ان حسبهم و فوق نسبهم و القو على ربهم و جاحد الله على ما سنابهم مكابرتن دیروز خواندیم که امام فرمود فَإِنَّ فا له من كل امه جنودا و اعوانا و رجلن و فرسانن. در هر عصر و زمان و جماعت و قوم و شهر و دیاری شیطان سپاه دارد سواره پیاده اعوان انصار کسانی که به نامی آتش بر کماج شیطان میدهند اعوان و یاران شیطان هستند امام فرمود مراقب باشید الان فلحذر فلحذر هشدار میده وجود مبارک امام فرمود آگاه آگاه شما رو هشدار می دهم از طاعت ساداتتون کلمه سادات جمع ساده سید ساده سادات یعنی المعظم المبجر یعنی کسی که در یه جماعتی چیه اون جایگاه بالایی پیدا کرده است البته ارز کنم اینجا داخل پرانتز ربطی بحثمون نداره چون تو زهن بارک دوستان اون هم شهر اسفحان و این عشق و علاقه این که شما به این جماعت بزرگوار دارید به این عنوان عرض می خدمت دوستان گمید ما دوتا عنوان داریم یا عنوان فقهی هاشمی داریم یا عنوان روایی سید داریم کلمه سید اینی که شما در فرزندان بزرگوار احلابیت به کار می بریم آسید هستن آسادات چی هم تو فلان؟ الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنه ریشه این کلمه مال اینجاست الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه. کلمه سید ویلا واژه سید به معنای آمون هر مردی را سید میگوین هر مالکی را سید میگوین توجه دارید الان شما وقتی بخواید توی مثلا عربی اسم جنابالی رو بگن تو اخبار گوش میکنید مثلا اسم رئیس جمهور فلان از سید فلان از سید مثلا نمی دونن مدو دوف اون سید مدو دوفه اونو نشدیمم همچین چیزی رو مثلا داره. این یعنی آقا این این کلمه سید دارن اما اون که شما میگید ریشه از آن دارد که حسین و الحسین سیدا شباب اهل الجنه ریشه از اونه که بعد تسری میکنه اما اون عنوانی که در فقه داریم بعد مباحث مالیش مطرح میشه مقوله خمس مطرح میشه و مباحثی که دارند، اون بحث هاشمیه من انت سبب الاب اله هاشمی میگیم هاشمی هم اون کسی که نسبت از پدر به هاشمیون میبرد، توجه دارید این دو تا عنوان سید هاشمی تو اصطلاحات ما با هم چی میشه ترکیب میشه یکی میشه قادتن اینجا چیزی چیز دیگه‌ای نیست امام فرمودن بدونید اینا این که بزرگان تو جامعه و کبرانکم 사ادات و کبران اینا خیلی کبیرن خیلی به چشمیان تو مردم برحذر باشید از اطاعت این ها. ن ما میفرماند نامت سعد نام و کوبراننا فزن لون از در قیامت دی میگن آقا ما ماهها رو دست دستیم دادیم بزرگان جامعه اینا کشیدن بردن ما را. این کدوم بزرگیز که جهنم میبرد؟ آیا اگر کسی بزرگی از سوی خدا پیدا کند اگر خدا به کسی عظمت بدهد مردم را به جهنم میبرد یا به بهشت میبرد؟ اگر کسی کارش به اونجایی رسید که خداوند اون رو رفعت داد یرفع الله خدا رفعت داد پایان این رفعت چیست؟ است رضوان است اگر علمت کما لم تكن تعلم خدای کسی رو برد در اون عرض به خدمت اون جهزمت و کانف از فضل الله علیه عظیم عظیما کبیر و معلومه که این نتیجه اینه که انسان‌ها رو به اون عظمت و به اون لطف الهی میرساند این که بریانی و سیاده اینست که برخواسته از اعتبارات دنیاوی است. از اعتبارات غیر الهی است الان ادامه مطلب رو از رت بازگو میفهمن. مراقب باشید اختیارتون ندید دست کسانی که خیلی به چشمتون بزرگ میان خیلی پر کردن چشم شما رو زر و زورشون خیلی این اعتبارات ظاهریشون جایی پیدا کرده است. الذین کی منزورن الذین تکبروا علی حسبهم اونها که متکبرن بر اساس اثرشون یعنی خودشون رو بر اساس فخر و نودمان و سلسله فلان و دودمان فلان و نسل فلان و همین ها که کلام گفتم اجازه فامدی خیلی تکرار نکن همون هایی که شما میبینید با دید آمیز. وقتی شما میبینید واقعا اینا در دل زمان فرو رفت چه اینها رو به شریعت باز می کنه و درست رسیدگی می‌کنه کنه شاید در عصر دیگری باشد در دولت اون معود باشد وقتی این سرواز ایمبیکایی به خودش اجازه میده بیاد وارد خونه این جماعت بشه و قصد تجاوز به ناموس اونها رو بکند و وقتی مقاومت می به هیفته نفر رو به گلوله ببنده و بعد بسوزانه جسد اینها رو و بعد راس راست راست به چرخت بگویند در حالتی که این کار رو کرد در حالت عادی نبود. تمام چرا میتونه این کار رو کنه؟ به خاطر اینکه خودشون اجاده برتر میدونه به خاطر اینکه اینها رو مزقاهی میکنم از اون ملت و جماعت اینها رو آدم نمیداند، حیمان میداند در همه جور حاضر باشون معامله کن و تاکنم امام فرمود دلذین تکبر و ان حسبهم اونان که به حسبشون و به جایگاهشون موقعیتشون این تکبرها را دارند و ترفع او فوق نسبه هم و این ترفع و بالا نشستن و برتری رو بر نسب خودشون قرار دادند خودشون رو نمیدانن عرض به تو یافته خودشون رو چی خودشون رو چی تمام این الفاظ و عباراتی که بناخره در دنیای ما هم کم نیست این روز و ان قاول لحین تعالی ربهم اونها که با فخرشون اونهایی که با نسبشون با حسبشون خودشون رو بزرگ کردن نه با فضل خداوند نه با علم نه با معرفت نه با انسانیت و شرافت اینها بزرگ شدن اما از این اعتبارات بزرگ شدن اینها ساده و کوبرانی که اطاعت اینها رو نکنید بر باشید از اینها انقبول حجینه علی ربهم حجینه کلمه‌ای که زوتو ذهنتون ممکنه از این بیاد استهجان این فیلم تصویر مستهجن تصاویر صوره قبیح مستهجن اینو برام می‌برید استهجان یعنی قبیح زشت و انقبال حجین تهدارب به اینا هر غلط و اشتباه زشتی رو به خدا نسبت میدن آه ماویا اومده هست روز اول سخنرانی اولش تو مسجد کوفه بعد از تمام اتفاقاتی که افتاد اومد رو منبر نشد جایی که فرزند عبی طالب می نشسته هست اومد رو بالای منبر نشست رو گفت ایو انناس مردم کوفه بدانی سلطنی الله علیکم خدا من رو بر شما مسلط کرده من دست قدرت خدایم بخواید نخواید با خدادادگان دادگان ستیزه مکن که خدا رو خدا داده است. ما دست قدرت خداییم برای شما. یعنی بر چی؟ این ظلم و جبر و جنایات خودش رو داره در قاعده جبر و تقدیر الهی بخورده جامعه میده. چقدر از این استفاده کرده؟ المقدر و کائن. دیگه این است و این چنین است و الخیروفی ما وقت. کی که گفته است این بازی ها را؟ انقذوا الحجین تعالی ربهم اینها نسبت دادن بر خداوند هر امر مستهجنی را و جاهد الله على ما صنع به از این جا مقداری دو سه جمله دارن حضرت که خیلی از اون ابعاد کلش اجازه بفرمایید یه مقداری ملموس‌تر حتی بر خودمون بکنیم این بسم رو و جاهد الله على ما صنع به اینها کسانی هستند که انکار میکنند به انکار با خدا برخورد میکنند با آنچه خدا با ایشان کرده است ما صنعه دوستان عزیز جایی این در زندگیتون رو مقابل آینه بهشتید مقابل اول خودتون نگاه کنید بعد چشمتون بردارید دور و بر من نگاه کنید بعد به این تو شهرمون نگاه کنیم آسمان ببینیم زمین ببینیم جان این می‌بینید که خالی از صنع خدا با شما باشه یعنی چیزی رو می‌بینید که اثر صنع دیگه‌ای با شما باشه در این هستی و وجود در خودتون شکلتون قیافتون، هوشتون مغزتون استعدادتون تمامتون کششتون و و به همین داریم یعنی می‌بینیم اصبقه علیکم نعمه هون ظاهرتن و باطنه پر کرده خدا سنش رو با ما و فضلش رو و لطفش رو در وجود و هستی انسان ها امام میفهمد اینایی که با است چون بر باشید که حسانی هم که اینها با آنچه خدا با اونها به سن خود عمل کرده است به سبب اون با خدا چه میکنن؟ ستیزه میکنن این وقت این حدیث رو گفتم بارها خدمت دوستان چون ادامه فرمایش حضرت همینه این از کلمات و زبان تو و مقدسه محمد و آل محمد محمد فرمودن محمد, الله! محمد, محمد فهمودن اقل نمایه زمکم الله سبحانه و تعالی کم چیزی که خدا از شما میخواد بندگان خدا حد درقل دقا چیزی که خدا از شما میخواد الله تسترین او به می ال ما آسی با نعممت و ابزار که به شما داده مسیت نکنید میخواید مسیت کنید برید با چیزی دیگه که از خدا نیست مسیت کنید داریم چیزی که از خدا نباشه با اون مسیت کنید یا باید با همین چم مسیت کن یا باید با همین زبان مسیت کنید یا باید با این دست مسیت کن یا باید با این پا یت کنید یا بود با همین پول و نعمت و ثروت و تیپ و قیافه و شکل و قدرت و بازو. اكن لماین زماکوم ما الله. کمترین چیزی خدا چیز دیگه ازتون نمیخواد. کمترین چیز اینه که با چیزایی که بهتون داده مقابلش نیایستی، تیغ رو نکشید به طرف خودش. امام اینو دارن میفرمایند. اینها کسانی هستند که سیتیزه با خدا میکنن الان ما سنع بهم بران چه خدا به ایشان کرده است با اون سنی که خدا به ایشان کرده است مخاوبرتن قضاوه اینها عجیب دارند انکار کار کنند گویا لطفی که خدا در حق اینها امضا کرده است و اون چه در حق ایشان جاری کرده است و مخاوبرتن لهاله و دارند مقابله می با آلا فبقی آلا ربکما تو کزنبا اینا دارن مکذبانه با آلا الهی افتال دو زبدال دو مساویس چار هیچ برو ندارن زیزان هر نعمتی که خداوند به ما داده است اگر این نعمت را ما در مسیر خاص الهی اون روش استفادهی که خداوند الگوی مصرفی که خدا برای هر نعمت قرار داده است قرار بدیم تردیدی نکنید نتیدش دو چیز میشه آبادانی دنیا و آبادانی آخرت هر نعمتی رو که خدا به ما داده است، اگر این رو در مسیر درست استفاده قرار بدیم میشه رشد و توسعه مادی و توسعه معنوی. از درش این دو در بیاد. اگر هر نعمتی از نعمت‌های الهی خلاف قانون و ضابطه و مجرانی استفاده اون قرار بدیم میشه خسارت دنیاوی و خسارت آخری. خسارت دنیا من آخره. او میشه صلاحیت دنیا و صلاحیت آخرت توجه فرمودین امین میفهمد و مقالبتن مقالبتن لآلائه اینها اینها اینکه اینطور رفتار میکنند که شیطان صفتانند اطباع شیطانند مراقب اینها باید باشید گول اینها فلی به رفتار اینها به خصوصیات اینها و شکلشون تبلیغاتشون تحمیلاتشون رو نخورید فه انهم قواعد و اساس الاسبیه اینها ها قواعد و پایه های ساختمان تعصبات و کبره های و دعا ام و ارکان الفتنه دعا ام همون پایه هاست اینا پایه های روک این فونداسیون و زیر بنای فتنه های ابتلاکننده مردمان. اینها مردم رو به فتنه مبتلا میکنن با این درش های خودشون با این شیبه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیوف و اعتزاز جاهلیه اینها ها شمشیرهای نسبت های برخی گرفته از جاهلیت و جهلند اعتزا و من تازا به از آن جاهلیت یه نبارتی بوده از حکایتی بود است اعتزایی به نسبت نسبت دادن نسبت های جاهلیت با همون خوی و با همون فکرها و همینوی که گفتم از دلش درمی آت خدمت دوستان فتق الله استدعام میکنم خیلی دقت کنید عزیزان فتق الله فتق الله ها. شما رو به خدا حفظ کنید و رعایت کنید ارتباط تون رو باخت و لا تکونو لنعمه علیکم دادن با نعمت که خدا بهتون داده با نعمت های خدا نجنگید های خدا رو در زدش به کار نبندید و لا تکنون نعمه از دادن این تیق نه از بحر کاری است انگور نه از نبیز است به چرخوشت ایسا برای دید یکی کشته فتاده گفت ای کشته که را کشتی الله اکمه خارت راکششت، فرمود و سیوف و اتضاح فتقلنااد و آ تک ن نعم علیک از دادن و لال فضله اندک حساددن به اون فضلی که خداوند بر شما کرده است خصد نباشید حاس به فضل خدا بر خودتون نباشید مگه میشه انسان به خودش حسادت کنه بله. انسان گاه به خودش حسادت میکنن به معنای شخص خودش نیست به معنای هم به معنای اطرافیان خودشه به معنای انسانهای اطراف خودش اگر کسی خداوند برون نعمت و فضلی داده است حسادت نکنید این تنگ نظری رو به کنالی بگذارید میتونید دیگه آلا دوستان اینها رو خوندید در انقدر براتون رو وعظها و منابع گفتن که خداو کند بخش از اونها به دل بنشیند و متوجه باشید که از دل براید به دل بنشیند ببینید اصلا حسد را اگر بگید، تعریف حسد چی بود؟ تمنی زبال النعمه انال غیر بهیف لایکون لنفسه یعنی این که انسان په خواهدی یه چیزی که فدانی داره نداشته باشه ولو اینکه اون چیز را به من هم ندهند این تعریف دقیق حسد اینه یعنی ریشه حسد میدونه در حقیقت واقعا حسد از اجزای شرکه شرکه و گاه حسد به شرک نفراتر به کفر منتهی میشه یاکوف یعنی خداوند را در دادگی و دهندگی حکیم نمیدانم، عادل نمیدانم، بصیر نمیدانم. خداش الله اکبر خلاص بر زبان جاری بشه این کلمه زشت نعوذ بالله نعوذ بالله خدا درست ندیده داده من میفهمم که این استحقاقش نداره بده از دستش گرفته بشه هر قیمتی ریشه ریشه اعتقادیه بعد میاد تصوری اخلاقی پیدا میکنه در وجود انسان خیلی باید اصاس باشید حتی معنای دوم این بارد بس اول این که نباشید اینکه که به فضلی که از به زبان امروز بگم عزیزا آیا واقعا این شهر شما اسفحان توسعه پیدا کنه چون در این شهر باید اقتصاد رواج باشه نمیدانم دانم زندگی مردم بیاد بالا زندگی اجتماعی مردم. آیا شما بهتر زندگی می کنید؟ یا وقتی که محدودیت ها، تنگی ها، سختی ها، فردان ها، فشار ها گرده این مردم باشه؟ کی شما تو این شهر آرامش روانی بیشتر دارید؟ آرامش اجتماعی بیشتر دارید؟ آرامش اخلاقی بیشتر دارید؟ وقتی که این مردم، اون پیدا بیان وقتی این توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی اینها با هم میاد یه شهر شهر زیبا بعد هفته اصفهان قرار میدید بعد میگید اسمش میگوزید شهر خدا تو تابلوهاتون مینویسید فلان اینها توجه دارید ببینید واقعا حسد بنیان فکن توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی یعنی <تصفيق>. <تصفيق تصفح> از شیطان و یعید و کم الفقر حسد میبرد در دل فقر در دل نیستی انسان‌ها را اما نقطه مقابلش اون وسط نظری که در نقطه مقابل حسده یعنی رواج کشایش توسعه دیدن نعمت‌های خدا بر بندگان خدا و از دلش خیلی چیزها در میاد خیلی ها در میاد از نقطه مقابل حسد معنای دومی هم که میتونه داشته باشه حتی انسان به خودش هم ممکنه چه بکنه حسد بکنه یعنی گاه خدا به نعمت و فضلی که به خودش داره جوری نگاه میکنه جوری عمل میکنه که شک نکنید مثل این اینکه دوست داره نعمت از دستش برود. یعنی عملا داره به خودش حسادت میکنه ولا بفضله ینکم وصادا ولا تطیعوا ادیا وا مطع ادعیاء نشید ادات ماین جمع دعی یه جا تو ذهنتون هست این کلمه دعی که اینو میخونید و لذت هم میبرید بند وجود انسان اگر به فهمه میلرزه که فرزند فاطمه درون صبح دهم ده در فریاد بر میآورد ال نندهی یا نندهی. قترکذ بین نسنتین بین الصلت الزلله هی من منزلله این فرومایه فرزند فرومایه نابکار فرزند نابکار ما را بین دو چیز مخیر کرده است من فرزنده علی را یعنی که دستو دستش بگذارم بیعت کنم با این یزید یا آنکه تیر گردن ما بکشد هی من منزلله پیش کند دست حسین ابن علی اگر در دست یزید قرار بگیرد نگی نیم هم بیاد کنم با او، دهی یعنی فرمایه پس. فرمود ولاد وقتی او، ولاد وقتی آل عدیا، موتی فرمایهای پس نشید. الله زین شربتم به صفقم کدرهم و خلاتهم به سحتقم مرزهم. من میخوام این ادامه عبارت رو هم تا سر از فقط رو بخونم اما مثل اینکه وقت رو باید رعایت کنم انشالله این چند سطری که میمونه که اینها هم مهمه در ادامه همین بحثمون متصل می‌کنیم به فقره بعدی که ان باید فردا خدمت دوستان عزیز بخوانم. فرمود هی من نزله هی من نزله ذلت رو نمیپذیریم این اینکه سر بر فراز نیزه هم داشته باشین خداوند سبحان دل به به حقایه و این مکتب و نورانیت سخنان امیر المؤمنین بیش از بیش آشگاه و آشنا و عارف بگردانه. و سلام علیکم و رحمت الله